رخداد نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی بانام و یاد یزدان پاک، با عرض سلام آده بهترام خدمت شنوندگان گرامی و برنامه رخداد از صدای امید راه ارتباطی ما با شما ایمیل info at صدای امید.com هستش بی منتظر شنیدن انتقادات پیشنهادات و نکته های علمی شما شنوندگان عزیز هستیم جناب آقای ایران میره رسیدیم دیگه به اصل کار ب اون مرحله از کارمون که در واقع می‌خوایم نقد کنیم این نظریه و از اینجا وارد بحث قومیت هویت من نشاط بشیم بله هم همینه به دوستمون آقای داروین بله آقای من اول یه تعریفی از تکامل یا چون تکامل کلمه عربی است و فرهنگستان زبان و فارسی سالهاست که کلمه فرگشت رو براش بله. تعیین کرده تعریف تکامل یا فرگشت یا به گونه ویژتر تکامل زیستی یا اندامی عبارت از اینه که دگرگونی در یک یا چند ویژگی فنوتیپی موروسی که طی زمان در های افراد رخ میده این ویژگی‌های فنوتیپی از دید داروین که از نسلی به نسل دیگه جابجا میشه صفات ساختاری هستند ساختار اون موجود هستند، صفات بیوشیمیایی هستند، و حتی صفات رفتاری که یک موجودی یه رفتاری رو در واقع از خودش نشون میده ریشه در همون ریش در واقع ویژگی‌های فنوتیپی او هستش به نظر داروین وقوع تکامل منوط به وجود بستری از گوناگونی ژنی در جمعیت خاصی از اون موجود خاص هستش این بستر ممکنه که از جمعیت های دیگه تأمین بشه حضر میخوام آقای دکتر الان دارین از قول داروین اینا رو میگین یا بحث زیستی علمی رو دارین نه بطر. از قول داروین آها. بله. چون قرن نوزدهم این مباعثی که هم بله عزیز میکنم الان اینها در واقع برداشت زیست شناس فعلی از اونایی که زیست که با داروین موافق آها نظریه زیست موافق با نظریه داروینه داروین از در حق شما بله بله دقیقاً محمد ویژگال اون مطرح نبوده در واقع نوع تفسیری هستش که زیستشناسان شناسان داروینی نیست بله 20 بل اتقام... رو صورت بندی کردن صورت بندی کردن و در واقع از زن خودشون یار او شدن به. و در واقع این رو به وجود آوردن این بیشتر ممکنه که از جمعیت های دیگه هم در واقع میگه که تامین بشه که به نو ترکیبی پدید بیاره یه نو ترکیبی جدید به وجود بیاد این ریشه به وجود اومدن همین تکاملی بودن انسان هم در همین نهفت است که ممکنه در واقع تبادل جنهای مختلف با جمعیت مختلف و جهش های باعث شد که یک چنین موجودی به نام انسان به وجود میاد. عبدفرماشت شما رو خام... کامل خواهیم شنید. ظاهراً شما مسائل در مورد خود آقای داروین هم دارید. می‌خواید خدمتشون هم بله وارد بحث اصلی بلده شدیم بله خواهش میکنم. بنده اینم عرض کنم بعد بریم سراغ فرمایشات شما. نه نه شما نه. ادامه بدید. خواهش می‌کنم. استفاده می‌کنم. بعد اینا معتقدن که ممکنه با توجه به اینکه های فنوتیپی متفاوت احتمال بقا و تولید مثل رو تحت تاثیرات متفاوتی قرار میده انتخاب طبیعی چون می انتخاب طبیعی یکی از های ژنتیک داروینیستی هستش تنازع بقا دو تا کلیدواژه داره دیگه بلد. جهش و انتخاب, انتخاب طبیعی, طبیعی بله میتونه سبب فراگیری جنو تیپ های جدید در خزانه ژنی میشه خزانه ژنی خود اون موجود زنده میشه و چهره فنوتیپی جمعیت رو به تدریج تغییر بده و اساساً همین منطق میگه که چهره مثلا میمونی تبدیل شد به یه چهره انسانی انتخاب جنسی هم ممکنه به فراگیری ژن‌های منجر بشه که نقش مثبتی در افسایش بقای جاندار داشته باشند و دیگر سازوکارهای تکاملی هم همبستگی ژنی و رانش ژن و زایش ژن هم رانش ژن هم زایش ژن به سمت یک انور ترکیبی جدید ممکن ژن‌هایی رو انتخاب بکنی که امتیازی رو امتیاز مستقیمی رو برای بقا یا تولید مثل همون جاندار به وجود بیاره در اون محیط مشخص در اون محیط مشخص حالا فرمايش داشت شما رو هم در واقع میشناویم که اصلا در مورد خود داروین میخواستم حالا چون شما شما داشتینم که خواهش می‌کنم ما چون دیگه قرار گذاشتیم که این از اینجا مباحث به صورت خطی نباشه و گذر نکنیم یعنی بریم برگردیم و اینو به چالش بکشیم بلد. و تا این بیان روشن بشه. من بلد. میخواستم چون ما دیگه قرار گذاشتیم که مباحث تخصصی نباشه بلد. به صورت اطلاعات عمومی از علوم مختلف بلد. بیان بشه من برای روشن شدن این ذهن اول که اون به محسی که چه مذهبیون بله چه آمهٔ مردم و حتی چه متخصصین علوم مختلف به محض که نام داروین رو میشنوند این فکر میاد تو ذهنشون که انسان از نژاد میمونه میمون. بله. و دیگه از اینجا دو شاخه میشن یک عده میخندن بله. یک عده میگن علمی قبول میکنن یک عده تکفیر میکنن یک عده و بله. حالتهای گناه اینجا دو شاید بشه بگیم فلسفیون دو شاخه مختلف رو برای این افکار در نظر گرفت پیروان نظریه فیکسیسم بله. و پیروان نظریه ترانسفورمیسم. ترانسفورمیسم. ترانسفورمیسم فیکسیسم پیروان نظریه آفرینش و خلقت هستند. دفعی ترانسفورمیز پیروان نظریه تکامل، فرگشت و باقی مسئل ما حالا برای اینکه که اصلا طرف هیچ کدوم رو بگیریم ما فقط میخوانم رو عنوان کنیم برای این ببینیم اصلا این موجوداتی که جاندارانی که روی کره زمین زندگی میکنن اینا رو زیستشناس چه چجوری دسته بندی کردن دو خانواده دو گروه بزرگ جاندار و بیجان داریم این که هیچ جانداران به دو سلسله بزرگ جانوری و گیاهی در شناسی بخش میشن اینا ناماشو شنوندگان دقت کنن تا اینجا میگیم سلسله سلسله جانوری و گیاهی گروهی از جانداران در شاخه تنابداران قرار میگیرن خب یعنی یه رشته مرکزی بدنشون دارن حالا یا این دورش استخان گرفته یا نگرفته یک تناب مرکزی دارن بعضی ندارن مثل کرمای هلقوی و اینا اونا فرق میکنه این شاخه تناب داران به دو زیر شاخه مهرداران و بی مهرگان بله. تقسیم میشن تخسیم. یعنی تناب مرکزی دارن اما بعضیا دور تناب رو استخان گرفته میشن مهرداران و بی مهرگان از این زیر شاخه مهرداران حالا ما دیگه به بی, بی مهرگان الان کاری نداریم کرم ها و بله مشکل میاییم تو این زیر شاخه رده های گوناگونی مثل ماهی ها، پرندگان، دوزیز دوزیستان، خزندگان و پستانداران در این زیر شاخه قرار می گیرن. حالا ما مشخص برای که دنبال رد پای آدم هستیم بله ما همون رده پستانداران از زیر شاخه مهرداران رو پی می گیریم. پستانداران باز خودشون به راسته های گوناگون تقسیم میشن پستانداران بله. به راسته های مانند گربسانان گافسانان سکسانان و نخستی ها یا پریمات ها, نخستی ها بله بر. خود این راسته نخستی ها به دو خانواده دمدار و بیدم, بیدم. بخش میشن آنگاه دو زیر خانواده میتونیم برای خانواده بیدوم ها در نظر بگیریم درسته یعنی دومداران مثل گیبون ها و بل. میمون ها و اینا خانواده بیدوم ها میشن از جمله گوریل ها, ها و اورانگوتانها که اینا از خانواده بزرگ گیبون ها جدا شدن درست یه زیر خانواده دیگه از این بیدوم ها زیر خانواده انسانسایان هستن دلسته. که از کپی های جنوبی در آفریقا پدید آمدن این زیر خانواده انسانسایان جنس داره یا سردههایی داره سرده انسان مثل ساپینس که شامل ناندرتال ها انسان رودزیایی و اینها میشه یک گونه مشخص از این سرده انسان بیرون میاد به نام گونه ساپینس، ساپینس یا انسان کرومانیون یا انسان خردمند امروزی. امروزی. خب این پس چارچوب بحث مشخص شد. بله. اینکه ما پستانداریم از رده نخستی ها هستیم و تو خانواده بزرگ پستانداران جا میگیریم حالا ما بعداً اگه بحث کنیم که آیا ما جزء جانوران هستیم امروزی. یا نیستیم دیگه این که مثل روز روشن دیگه درست. حالا ما جزء جانورانیم حالا جانورانی که جزء جانورانیم که امتیازاتی داریم تو مغزمون درست. و اندام همون حالا اینو تا اینجا داشته باشیم تا فرماشو سوال بپرسیم بعد نکته های دیگه رو باز بندم بسیار متشکرم از شما خیلی دوست داشتم یه خلاصه ای از روند پیدایش این نظریه تکاملی که در واقع داروین بهش معتقد هستن بپردازم این داروین چاز داروین اول میاد بدون اینکه در پی چا به چالش کشنه فرضیه ثبات انواع بشه صبات انواعی که قبل از او بین زیستشناسان در واقع مطرح بود اینو بدون اینکه به چالش بکشه انواع نبود در واقع چالش فرضیه انواع نبوده ادامه تحقیقات خودش رو ادامه... بدون این که فرضیه پاسخ بده ادامه میده یعنی این یکی از دلایلی که زیستشناسان بعدی که حالا من خواهم رسید که اون زیستشناسانی که مخالف نظری داروین میشن. که داروین میاد تحقیق علمرو یعنی می بیننی تحقیق و پژوهش تو هر علمی باید در ادامه پژوهش های علمی دیگه باشه حالا ما درست شاید ربطی نداشته باشه یه آسیب شناسی علمی هم در ایران بکنیم چرا تو ایران علم ادامه پیداک نمیکنه چرا فلسفه تو ایران ادامه مثل فلسفه توی قربا میگن تمام فلسفه توی غرب پینوشتی است بر فلسفه افلاطون اینو شنیدین حتما چرا چون که افلاتونی حرف زده ارسطو اومده تکمیل ترش کرده بعدا اومدن بعد بیکن اومده تو دوری معاصر دکارت اومده هگل اومده هر کسی اومده تکمیل کرده یعنی اون حرفی که حرف قبلی رو گوش کرده نگاه کرده و یه حرفی بهش اضافه کرده دغدغه‌ای که قبلی داشته نفی و اثباتی که قبلی داشته اون خلعهای های اندیشه ای که قبلی داشته اونو تکمیل کرده تو ایران اینجوری نبوده تو ایران همیشه ما انقطاع داریم آی دکتر در قرب من اون اندازه ای که شما اون پیوستگی رو میبینی نمیبینم حالا چون فرمایشات شما قطع نشه بعدا شاید بله توضیح بله بله. کوچیکی که از استادان شنیدم و اینجا جسد. عرض میکنم حتی قطعا ما خواهیم برسید چرا چون که خود همین است های نظری مارکسیسم میشه و بعدا اصلا به اون خواهیم رسید خواهی صحبت خواهیم کرد حتی تو ایران هم اصلا بحثاشو بحثایی که توسط مجله دنیا توسط تقی ارانی ورده ایران شد که اصلا ما کلی بحث داریم در اون مورد که بله اینا به چه شکل واردی ایران شد ولی تو ایران همیشه ما انقطاع داشتیم انقطاع نظریه ها داشتیم و هر کسی هم که اومده قبلی رو تخریب کرده و خواسته یک اندیشی جدید به وجود بیاره به خاطر همین همیشه توی علم تو ایران هم ما هیچ وقت از چیز علم قبلی چون خودمون همیشه علام الدهر میدونیم از گفته های قبلی از اندیش های قبلی هیچ وقت درس نمیگیریم و حرف خودمون رو میزنیم داروین هم همینج مشکلی داشت مشکلی داره اون دغدغه ها فرضیه ها نظریه ها و ابهام های علمی که زیست شناسان قبلش اونها رو شما دلیلش چی میبینین آیدکتر بگه راه دیگه میره حالا دلش الان عرض میگه. میگه که دلیلی که در واقع اینجا جورج والاس میاره یک یک سال پیش از شروع سفر کتاب جنجال برانگیزی از چارلز لایل منتشر شده بود به نام اصول زمینشناسی که داروین ای از آن رو در واقع همراه خودش میبره در اون سفری که معروف با سفر بیگل سفر کشتی بود و پنج سالم طول میکشه بله بله. که داروین تو مدتی این سفر بیشتر این مدت رو صرف پویش های برخ برخی سنگوارها و مطالعه بر روی ارگانیسما میکنه. و از موجودات زنده آمریکای جنوبی هزاران نمونه گردآوری میکنه و بسیار از اونها رو برای اندیشمندان غربی ناشناخته بوده و همین ها رو در واقع همراه با یادداشتای مفصلی از آمریکا و از قاره آمریکا میاره و همراه هم اون همین کتاب در واقع جنجال برانگیزه چازدایل به نام اصول زمین شناسی همراه خودش میاره نویسنده یعنی همون چازداره در این کتاب مدعی میشه که سطح زمین بر اثر فرایندهای تدریجی تغییر میکنه و دگرگونی پوستی زمین جریانی یک نواخ در طبیعت در طول تاریخ این کره خاکی هستش توضیح میدی که هر نوع موجود زنده ابتدا در یک مرکزی رشد میکنه و از اون نقطه پخش میشه و نشون میدی که مدتی دوام میاره تا اینکه تدریجا از بین میره و جای دیگه خودش جای خودش رو به یک نوع دیگه میده بله شاید اون موقع چون هنوز این مسائلی که ما الان میدونیم در مورد همین در واقع قطع نسل جانداران دیگر و شاید اون موقع داروین اینها رو نداشته بله شاید این در به وجود اومدن این دو اندیشه داروین شکل گرفته باشه ما قبل از اینکه وارد این تناقض بشیم چون از توق فرمان به ما دستور میدن که وقت برنامه چهارم هم به پایان رسیده این رو بسپوریم به قسمت در واقع پنجم این برنامه بله بله در بررسی بکنیم شنوندگان گرامی به پایان قسمت چهارم برنامه رخ داد می میرسیم خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم در این چهار تا قسمت برنامه و از اینکه حوصله فرمودید و گوش فرادادید به اییز ما سپاس گذاریم شما رو به خداوند منان مییم. خدای ها رو نگه دارید